حوالد تازه معنی این واقعاً چیه چطور کسی میتونه از نو متولد بشه اون چطور انجام میشه و چرا ما باید تولد تازه داشته باشیم عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس برای بررسی مقدماتی کلام خدا خوش اومدین ما خوشحالیم که شما وقت گذاشتید و در مطالعه کلام خدا با ما همراه شدین. در درس امروز اولین معجزه ایسا رو مطالعه خواهیم کرد و نگاهی خواهیم انداخت به زمانی که یکی از رهبران مذهبی از ایسا همون سالات رو پرسید. به دقت به پاسخهای ایسا در درس امروز گوش کنید. به کلاس دیگری از دانشکده ی کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. به متنی از باب دوم انجیل یوحنا گوش می کنیم.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 در آنجا شش خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت به نوکران گفت خمره ها را از آب پر کنید آنها را لبالب پر کردند آنگاه عیسی گفت اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید و آنها چنین کردند رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند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 و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردن. یوحنا در هدف خودش از نوشتن انجیلش به ما گفته که درباره آیات و موجزات عیسی با ما صحبت خواهد کرد. چون یوحنا معتقده که اگر این نوشته های مربوط به آیات و موجزات رو کنار هم قرار بده و ما اونها رو بررسی کنیم، این نوشته ها ما را قانع خواهد کرد که عیسی همان مسیح پسر خداست. یوهننا میخواد که ما این رو باور کنیم چون اگر باور کنیم حیات عبدی خواهیم یافت. جالبه که بعد از اینکه به ما میگه میخواد به ما چی بگه و بیان منظورش از نوشتن این انجیل چی بوده بلافاصله فاصله اولین معجزه ای رو که عیسی در عروسی در قانا از خود ظاهر کرده با ما در میون میذاره. اونجا که عیسی آب رو تبدیل به شراب میکنه. من شما رو نمیدونم اما من در کلیسای کوچک و شریعتی بزرگ شدم که اونجا به من گفته بودن هفت گناه مرگبار وجود داره که یکی از اونها خوردن مشروبات الکلی بود از این رو من در درک اولین معجزه عیسی با چالش بزرگی روبرو بودم که چرا عیسی باید آب رو به شراب تبدیل کنه آیه اینطور میگه او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردن کمی بعد که بزرگتر شدم و درک بیشتری از این چیزها پیدا کردم دیدم که بعضی از قوانین شریعتی ما فقط تقدس های بود. اونها کتابچه کوچکی داشتند که قوانین کلیسا در اون نوشته شده بود. اما اگر شما از اون کلیسا به جای دیگری می رفتید، در اون کلیسای جدید کتابچه آبی دیگری بود که اونجا هم حلال و حرام های متفاوتی دیده می شد. من اینو از شبانی متوجه شدم که فرصت متعددی برای سفر به آن آنسوی دریاها داشت و این میتونست بسیار گیج کننده باشه. او یک هفته در یونان با کلیسای مدرن پولس رسول وقت داشت. وکیل یونانی که شبانی این کلیسای پروتستان آزاد رو داشت، کسی بود که شبانی یک کلیسای بزرگ در آتن رو به داشت. و حدود 75 کلیسای اینترنتی رو در سراسر یونان هدایت میکرد. او این فرصت رو داشت که در کلیسای خودش در آتن موعظه کنه و در کلیساهای کوچک ماهواری در تسالونیکی و قرنتوس و دیگر جاها موعظه های او پخش بشه. شبان یونانی واقعا میتونست اسموائزه بکنه. او به رستوران های شلوغی میرفت و فرصت رو غنیمت میشمرد و کلام رو برای هر کسی که در اون رستوران بود موعظه میکرد. اون شبان میدید که مردم با اشک و آه و به رو به زمین میافتند و او نمیتونست بفهمه که اون واعظ یونانی چی میگه که مردم این همه تحت تاثیر قرار نمیگیرن. چون موعظه به زبان یونانی بود. اما میدونست که کلام خدا داره موعظه میشه. مردم در تیه موعظه او زیر الزام شدیدی قرار میگرفتند. اما شبان یونانی هر بار که در یکی از این رستوران ها موعظه میکرد، حدود یک لیتر شراب میخورد. بالاخره اواخر هفته شبان یونانی به مهمانش میگه، شبان یونانی به مهمانش نگاه کرد و گفت، آیا مشروب خوردن من شما را ناراحت میکنه برادر؟ و شبان مهمان گفت، آه نه تانوز. پولس هم به تیموتاوس سفارش کرده بود که گاهی کمی شراب بخوره. شبان یونانی این رو دستاویز قرار داده و گفت او اما پولوس این رو برای تیموتاوس به این خاطر نوشت که تیموتاوس بیمار بوده. اگر او سالم بود، حتما پولوس برای او می نوشت که شراب بیشتری بخوره. چون که تانوس شراب می خورد این به این معنی نیست که او مرد خداشناس و روحانی نبوده. با این حال برای این شبان مهمان کمی گیج کننده بود، چون در فرهنگ او خوردن شراب جز چیزهای خطا محسوب می شود وقتی به باب دوم یوحنا میرسید، قدوسیت منطقی خودتون رو کنار بذارید و اولین معجزه یعسا رو ملاحظه کنید یوحنا سعی داره اینجا به ما چی نشون بده بذارید به سطح دوم بپردازیم به اون سطح معنی عمیق‌تر انجیل یوحنا واقعا یوحنا اینجا چی میگه در کتاب مقدس شراب سمبل شادی هست من معتقدم که علاوه بر اینکه این یک معجزه عملی بود این داستان تمثیل زیبایی هم هست اولا این داستان تمثیلی از چیزی که یوحنا گفته که میخواد به ما بگه که وقتی مردم واکنش شایسته در مقابل عیسی نشون می اونها دوباره متولد می شدن. از روح متولد می شدن. من معتقدم که این معجزه زیبای عیسی در تبدیل آب به شراب تمثیلی از تولد تازه هست داستان این معجزه تمثیلی رو بیان میکنه اولین گام در تولد دوباره در کلام مریم به تصویر کشیده شده که نزد عیسی میاد و میگه اونها شراب ندارن. به طور تمثیلی این مثل گفتن این میمونه که اونها هیچ شادی ندارن. اگر داستان قوم خدا رو در اون زمان بدونید، حتما اینو هم میدونید که اونها شاد نبودن. این گفته به ما نشون میده که اولین گام در تولد دوباره اعتراف به این هست که شما تولد دوباره نیافتید و شادی واقعی ندارید. شرح کتاب مقدسی تولد دوباره شخص رو بخونید. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. وقتی شما ثمره روح رو ملاحظه می‌کنید و فراوانی حیات رو در شخصی که از نو متولد شده می‌بینید، می‌گید این شرح حال من نیست. مثل این میمونه که شما میگید من شراب ندارم. این تصویر اولین گامی که شما باید بردارید تا دوباره متولد بشید. اعتراف به نیاز ما اولین گام هست. گام دوم این تمثیل تولد دوباره جایی هست که عیسی به خدمتکاران میگه خمرها ها رو از آب پر کنید. در کتاب مقدس آب سمبال خود کتاب مقدس هست. پس این میتونه تصویر گام دوم تولد دوباره باشه. ظرفهای خودتون رو با کلام خدا پر کنید. کتاب مقدس اکثر اوقات وسیله خدا برای تولد تازه هست پتروس گفته که تولد تازه مثل تولد جسمی هست در تولد جسمانی شما اسپرم و تخمک دارید شما تلقیح دارید توسعه حیات رو دارید و بعد بحران تولد در اول پتروس باب یک پتروس به ما میگه که تولد روحانی مثل تولد جسمانی هست در تولد روحانی اسپرم کلام خدا هست پولس رسول گفته ایمان از شنیدن کلام خدا میاد. به این دلیل که ما دانشکده یک کتاب مقدس رو داریم. تجربه به من میگه وقتی مردم وارد کلام میشن و کلام وارد اونها میشه بعد اونها ظرفها یا زندگیهاشون رو با کلام خدا پر میکنن اونها غالبا از نوع متولد میشن چون که کلام خدا بزریه که تولد تازه رو به بار میاره. بنابراین زندگی و ذهن و قلبتون رو با کلام خدا پر کنید. این گام شماره دو هست. سومین گام در این تمثیل تولد زمانیه که شما ظرف رو با آب یا کلام خدا پر می‌کنید، جمله هرچه او به شما میگه انجام بدید چیزی که مریم به اونها میگه. وقتی کتاب مقدس رو می خونید خواهید فهمید آشنایی با کتاب مقدس نیست که باعث میشه انسان زنده بمونه. عامل حیات بخش کتاب مقدس اطاعت از کلام خداست. بر اساس تمثیل برزگر وقتی که این رو بفهمید و این رو بپذیرید، کلام خدا سمره بیشتری خواهد آورد. بنابراین در حالی که شما ظرفتون رو با کلام خدا پر می کنید، اگر صدای خدا رو شنیدید که میگه گه این کار رو بکنید، این کار بکنید. گام چهارم در تمثیل تولد زمانی هست که شما گام های یک، دو و سه رو تمام کردید و آب رو که تبدیل به شراب شده بین مردم توضیح می کنید. در اینجا هم مثل غذا دادن به 5000 نفر شما میتونید بپرسید این معجزه چه زمانی صورت گرفت این آب کی به شراب تبدیل شد من فکر می کنم این معجزه زمانی صورت گرفت که خادمین با ایمان آب رو برای توزیع بین مردم می بردن. اون موقع بود که اون تبدیل به شراب شد این تمثیل شاید نشون میده که وقتی شما تولد تازه را تجربه کردید این می تونه تغییری در روابط شما با مردم ایجاد کنه اگه واقعا تولد تازه داشته باشید آیا زنتون از این خبر خواهد داشت؟ آیا شوهرتون از این خبر خواهد داشت؟ آیا والدینتون این رو خواهند فهمید؟ آیا همکارانتون از این خبر خواهند داشت؟ البته که خبر خواهند داشت. چون که این به صورت گسترده و عمیقی روابط شما رو با اونها تغییر خواهد داد. وقتی شما این زندگی جدید رو در روابطتون به کار بگیرید مشخص میشه که تولد کاملاً تازه ای رو تجربه کرده‌اید. پس این معجزه زیبا میتونه تمثیلی از چیزی باشه که یوحنا غس داشت به ما بگه که وقتی مردم واکنش شایسته به ایسانشون بدن تولد تازه خواهند داشت داستان این معجزه زیبا همینطور میتونه تمثیلی از بیداری باشه وقتی از نوع متولد میشید زمان‌هایی هست که دیگه نیازی نیست از نوع متولد بشید اما به تازه شدن و احیاء مجدد نیاز دارید اینجا فرمولی هست که با استفاده از اون میتونید تقویت بشید گام اول اعتراف کنید که شراب ندارید فقط به خدا اعتراف کنید من دیگه اون شادی رو که باید داشته باشم ندارم من شاد نیستم بعد قدم دوم اینه که ظرف خودتون رو با کلام خدا پر کنید به جایی برید و با خدا خلوت کنید قلب و ذهنتون رو با کلام خدا انباشته کنید ضمن اینکه این, این کار رو میکنید به صدای خدا گوش کنید چون احتمالا او بر روی چیزی دست خواهد گذاشت و خواهد گفت این کار رو بکن یا اراده اینه که بگه این کارو نکن هر چیزی که خدا به شما میگه از او اطاعت کنید و بعد خواهید دید که این احیا در زندگی شما صورت گرفته قدم چهارم اینه که از خدا بخواهید با استفاده از این احیا مجدد شما رو برای برکت دادن به اطرافیانتون به کار بگیره وقتی این چهار گام رو برداشتید خواهید فهمید که زندگی شما در مسیح تازه شده خدا از چیزی معمولی چیزی خارق العاده خلق میکنه او همیشه دوست داره این کارو بکنه. او از آب شراب میسازه. هدف اصلی و اهمیت این معجزه این بود که برای اولین بار شاگردان به مسیح ایمان آوردند. وقتی اونها عیسی رو دیدند و از او پرسیدند کجا زندگی می کنی عیسی گفت بیایید و ببینید. نظر بر اینه که اون موقع اونها باور کردند اما کاملا باور نکرده بودند. اونها مکاشفاتی دائم از چیزی داشتند که این انجیل به اون ایمان میگه. برای نوشته ها اونها واقعا وقتی ایمان آوردند که دیدن عیسی آب رو به شراب تبدیل کرد این اولین باریه که گفته شده اونها ایمان آوردند. ما مثال دیگری از ایمان در یوحنا باب دو می میبینیم در پایان باب اینطور میگه در آن روزها که عیسی برای عید فسح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند اما برداشت جالب دیگری از ایمان هست که میگه ایسا به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب میشناخت. این آیه به ما چی می که؟ ایمان داریم تا ایمان هر چیزی که ایمان تلقی میشه ایمانی نیست که نجات بخش باشه این مردم چون معجزات رو دیدن باور کردن اما آیا این واقعا ایمانه؟ ایمان بر اساس آخر باب دوی یوحنا یک جاده طرفه هست ایمان وفاداری شما به مسیح و وفاداری مسیح به شما هست. مسیح میگه مرا پیروی کنید و من شما رو خواهم ساخت. این رویه ایمان هست. شما تعهد میکنید که از او پیروی کنید و او تعهد میکنه کاری در زندگی شما انجام بده. در این مورد مردم ایمان میارن اما ایمان اونا تماما ایمانی اقلانی بود. عیسی به اونها هیچ تعهدی نمیده چون اونها تعهدی به عیسی ندادن. باب دو ایسا معبد رو پاکسازی میکنه. پاکسازی معبد در انجیل هم نظیر هم اومده. اهمیت پاکسازی معبد آنطوری که در انجیل یوحنا گزارش شده یکی از مهمترین آیاتیه که عیسی به قوم خدا نشون داده بنا به گفته یوحنا پاکسازی معبد زمینهای رو فراهم کرد که در اون عیسی مهمترین نشانه اش رو به ظهور رساند رهبران مذهبی مرتبا به عیسی میگفتند به ما چه علامتی مینمایی که این کارها را می‌کنی وقتی اونها از اون نشانه ای می میخواستند عیسی میگه ای نسل شریر و زناکار این قدس را خراب کنید که در سه روزان آن را برپا خواهم نمود عیسی در جاهای زیادی این حرف را به اونها زده وقتی او از مردگان قیام کرد شاگردان او نبوتهای عهد قدیم را در مورد قیام او و جمله‌ای را که از عیسی بارها و بارها شنیده بودند به یاد آوردند عیسی میگفت که من هیچ نشانه جز این به شما نخواهم داد پس در رابطه با پاکسازی معبد یوحنا در مورد این معجزه بزرگ با ما حرف میزنه. باید از شما بپرسم آیا معجزاتی رو که یوحنا در این انجیل به ترتیب آورده ملاحظه کردید؟ یوحنا این جمله عیسی را قبل از قیام او آورده. چون این مهمترین آیتی هست که عیسی نشون داده و یوحنا به ما بازگو میکنه که اگر ما به اون ایمان بیاریم اون ما را متقاعد خواهد کرد که عیسی همون مسیحه. آیا این مهمترین آیت شما رو متقاعد کرده؟ آیا باور دارید که عیسی که دو هزار سال پیش زندگی میکرد همان مسیح بود؟ تنها پسر خدا؟ عیسی در باب دوم انجیل یوحنا کیه؟ در باب دوم عیسی کسیه که میتونه آب شما رو به شراب تبدیل کنه. شما میتونید با مشکلاتتون به حضور عیسی بیاید و او مشکلات شما رو که مثل آب هست میگیره و اونها رو تبدیل به شراب میکنه. شما میتونید با تمامی ظفهاتون به حضور عیسیاب بیایید و وقتی ایسا رو به زندگیتون دعوت کنید عیسی آب شما را به شراب تبدیل میکنه این معجزه کاربردهای زیادی داره شما میتونید این داستان رو در معزه یا تعلیم کلام خدا به کار بگیرید یکی از استادان مورد علاقه من دکتر جی ورنون مکی که کلام خدا رو تعلیم میداد وقتی که برای هزار نفر هر یک شب میکرد می میگفت گاهی من پشت تریبون میستم و پیامی رو میدم که احساس میکنم خدا به من داده اما رو راست بگم پیام من خیلی ضعیفه این فقط آبه. اما خدا به من میگه مگی اونو به من بده من اونو به تو پس خواهم داد جای بین تریبون و مردم روح القدس اون پیام رو لمس میکنه و اون آب تبدیل به شراب میشه من نمیدونم اون چطور این کارو میکنه اما مطمئنم این کارو میکنه دکتر مگی به ما میگفت واعظین مشتاق جوان فقط اطاعت کنید. با ایمان به او اعتماد کنید شاید شما فکر کنید پیام شما فقط آبه اما اون رو موعظه کنید. وقتی آب رو به خدا بدید جایی بین تریبون و مردم خدا اون رو لمس میکنه و تبدیل به شراب میشه. من به شخصه فهمیدم که این حقیقت داره. پس در یوحنا باب دو عیسی کسیه که میتونه آب رو به شراب تبدیل کنه. ایمان در باب دو چیه؟ در باب دو ایمان، برداشتن این قدم ها برای تولد تازه یا برای احیا هست. اولاً با خدا رو راست باشید و اعتراف کنید که شراب ندارید. اعتراف کنید که تولد تازه ندارید، شاد نیستید و نیاز به احیا دارید. بعد ظرفتون را با کلام خدا پر کنید، در کلام خدا تعمل کنید و وقتی کتاب مقدس رو میخونید، هر کاری که خدا میگه انجام بدید و بعد اون رو با دیگران در میان بذارید. کلام خدا را با مردم در میون بذارید. اینها تماما مثال هایی از مفهوم ایمان هستند. امروز به او اعتماد کنید که زندگی معمولی و آبکی امروز شما رو بگیره و به شما زندگی العاده و تولدی تازه پر از شادی بده. و حیات از نظر یوحنا چیه؟ حیات بر اساس انجیل یوهنا تولد تازه هست. یوهنا در بسیاری از این بابها میگه زندگی از نومتولد شدن هست. حیات تجربه کردن تبدیل آب به شراب هست. من معتقدم که حیات به این معنی هم هست که شما وارد رابطه دوستی با ایسا شدید و شما به او تعهد دادید و او به شما. وقتی بدونید که عیسی مسیح در هر چیزی که هست و هر چیزی که برای شما داره متعهده، این آگاهی حیاتی با کیفیت جدید به شما میده. آیا به عیسی مسیح اعتماد کرده اید که زندگی شما را از آب به چیزی العاده تبدیل کنه؟ آیا با اعتماد به ایسای مسیح و پیروی او زندگی شما جان ای گرفته؟ حالا میخوام ازتون بپرسم، حیات چیه؟ آیا به اون زندگی که یوحنا به اون حیات ابدی میگه دست پیدا کردید؟ اگه چیزی رو که ایسا میگه اومده تا به ما بده دریافت نکردید؟ اگه حیات به فراوانی رو دریافت نکردید، از شما میپرسم. این نشانه و موجزاتی رو که یوحنا با ما در میون گذاشته ملاحظه کردید؟ و با ملاحظه این چیزها آیا باور می کنید که عیسی همان مسیح معود هست؟ به گفته یوحنا این پیش شرط لازم برای دریافت حیات ابدی هست. به عبارتی از شما میپرسم: آیا هدف یوحنا را از نوشتن انجیلش که در آیات انتهایی باب 20 انجیل چهار رو مامده ملاحظه کردید و آیا اون اهداف رو در زندگی خودتون و تجربه حیات ابدی به کار گرفتی؟ اندیشیدن به این مورد میتونه مهمترین چیزی باشه که شما در زندگی بهش فکر کردید. اگه چیزی که یوحنا به عنوان هدف از نگارش انجیلش نوشته حقیقت نداشت، اون موقع مهم نبود. اما اگه چیزی که یوحنا به عنوان اهدافش از نوشتن این انجیل قید کرده حقیقت داره و ما میدونیم که حقیقت داره اون موقع هیچ چیز دیگری اهمیت نداره. حالا به باب سه میرسیم که احتمالاً آشناترین باب در انجیل یوحنا هست. در این باب هست که عیسی با عالم یهودی به نام نیقودیموس ملاقات میکنه وقتی به این باب می رسیم اگه به متن نگاه کنید، میفهمید فهمید که در باب سه یوحنا به ما چیزی رو میگه گه که در باب یک و دو گفته. در باب یک یوحنا گفته وقتی مردم به عیسی ایمان می آوردن از نو متولد می شدن. و در باب دو به طور تمسیدی توسط معجزه تبدیل آب به شراب، یوحنا تولد تازه را به تصویر میکشه او وقتی به باب سه، چهار و پنج میرسه، به ما مثالهایی از افرادی میده که تولد تازه رو تجربه کردن. اولین فرد، یک عالم به نام نیقودیموس هست که یکی از علمای برجسته یهودی در اورشلیم هست. بر اساس شواهد موجود، نیقودیموس برادر مورخ یهودی یوسیفوس هست. نیقودیموس شبانه نزد عیسی میاد و سر صحبت رو با عیسی باز میکنه و میگه استاد. به لحاظ انسانی این خیلی جالبه. عیسی یک نجار از ناصره هست و با این حال این عالم و معلم برجسته اسرائیلی عیسی را استاد خطاب میکنه و در ادامه میگه میدانیم که تو معلمی هستی که از جانب خدا آمده ای زیرا هیچکس کس نمیتواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد برای من همین جالبه که دیموس نزد عیسی اومد بعضی ها خیلی بر این تاکید میکنند که او شبانه آمد او شاید به خاطر اینکه روزها سخت مشغول کار بوده شبانه اومده شاید به این دلیل شبانه اومده که نمیخواسته کسی او رو ببینه که نزد ایسا میاد. چیزی در این باره گفته نشده که چرا او شبانه به دیدن ایسا رفت؟ گفته شده او به این دلیل نزد ایسا رفت چون تحت تاثیر کارهایی قرار گرفته بود که ایسا انجام میداد. و در نتیجه کارهایی که میدید ایسا انجام میده، میخواست که بیاد و بشنوه که او چی میگه؟ اگه فکر کنیم که امروز رفتار ما خیلی با اونا متفاوته خودمونو گول میزنیم. چیزی که عمل میکنیم خیلی مهمتر از حرفیه که میزنیم. یادتون باشه که عیسی بیشترین اهمیت رو به عمل میداد، نه به اظهارات. اینجا شما سمرات فلسفه رو میبینید. شنیدید که میگن ما کاری رو میکنیم که واقعاً بهش باور داریم. بقیهش حرفهای حرفای مذهبیه و کسی به حرفای مذهبی نیازی نداره. نیقودیموس برای شنیدن حرفای مذهبی نزد عیسی نیومده بود. او به خاطر کارهایی که از عیسی دیده بود نزد او رفت چون او معجزات عیسی رو دید خواست که صحبت‌های او رو بشنود این گفتگو اینطور شروع میشه وقتی نیقودیموس او را استاد خطاب میکنه بعد از اون عیسی شروع به صحبت با او میکنه وقتی عیسی حرفهای مذهبی خود را با نیقودیموس شروع میکنه به او اینطور میگه آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از سر نو نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید نیقودیموس به او گفت چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد مولود گردد؟ آیا می شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته مولود شود؟ عیسی در جواب گفت آمین آمین به تو می گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است عجب مدار که به تو گفتم باید از سر نو مولود گردید این آیات مهمترین مرجع در انجیل یوحنا برای تولد تازه هستند معنی واقعی تولد تازه چیه ضمن اینکه به مسئله تولد تازه میپردازیم بذارید ازتون سوالی بپرسم از نظر عیسی هدف از تولد تازه چی هست ملاحظه کنید که عیسی تولد تازه رو به عنوان پایان کار تعلیم نمیده او تولد تازه رو وسیله برای نیل به فرجام میدونه میگه تو باید از نوع متولد بشی و دلیلش رو میگم که چرا چنانچه از جسم ولود میشود فقط جسم هست و تولد جسمانی شما موجودی جسمانی خلق میکنه میتونید بگید منظور عیسا اینه که تولد جسمانی شما شما را به عنوانی حیوانی متفکر خلق میکنه و شما را به لحاظ روحانی زنده نمیکنه اگه میخواید روحانی باشید همونطور که تولدی جسمانی یافتید تا موجودی جسمانی باشید باید تولدی روحانی هم داشته باشید او میگه باید تولد دوباره داشته باشید چون اگر کسی از سر مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید حقیقت اصلی اینجا ملکوت خدا هست نه تولد تازه تولد تازه ای برای فرجام کار هست ملکوت خدا فرجام کار هست تولد تازه ای برای رسیدن به ملکوت خدا است. پادشاهی خدا چیه؟ ما جواب این سوال رو در عهد قدیم و در معزه سر کوه یاد گرفتیم پادشاهی خدا قلم رویی هست که خدا در اون حکومت میکنه حقیقت در واقع اینه خدا پادشاه هست و قلم قلمرویی داره که در اون حکومت میکنه اگه این شامل شما هم میشه اگه شما مطیع او هستید و او واقعا پادشاه شما شده اون وقت شما هم بخشی از پادشاهی او هستید شما پادشاهی او رو دیدید و وارد پادشاهی او شده ای به دلایلی بعضی ها فکر می پادشاهی خدا در آسمان و بعد از مردن هست تعبیر اونها از گفتگوی عیسی با نیقدیموس اینه که اگه تولد تازه نداشته باشید وقتی مردید به آسمان نخواهید رفت این چیزی نیست که عیسی گفت عیسی گفت نیقدیموس چیزی به نام ملکوت خدا هست و اگه تو از نام تولد نشی اونو نخواهیدی. تا وقتی از نو متولد نشی، وارد ملکوت خدا نخواهی شد. اما البته حقیقتینه. وقتی از نو متولد بشی، ملکوت خدا رو میبینی و وارد ملکوت خدا میشی. نه وقتی مردی، بلکه همین الان. اولین محصول تولد تازه اینه که عیسی مسیح خداونده. وقتی از نو متولد میشم، من پادشاهی خدا رو میبینم و وارد رابطه ای با عیسی میشم که در واقع او خداوند و شاه من میشه. سالها پیش با برخی مشایق گرد همایی داشتیم و از اونها دو چیز پرسیدم و ازشون خواستم که روی سوالات من فکر کنن و بعد از اون توسط نامه به من جواب بدن و بهشون گفتم بعدا سر سوال من و جواب اونها بحث خواهیم کرد اولین سوالم این بود بر اساس تعالیم عیسی در نیمه دوم متاتش 6 اولویت‌های شما چی باید باشه سوال دومم این بود بر اساس اینکه چطور وقتتون رو صرف می‌کنید چطور پولتون رو خرج می کنید و یا چطور انرژی و توانایی ها و محبتتون رو به کار می گیرید و بهتره بگیم براساس اینکه چطور از خودتون مایه می زارید اولویت های عملی شما چی هستند؟ و اونا رو تشویق کردم که در پاسخ به این دو سؤال رو راست باشد بعضیشون گفتند اگر چه سالها بوده که به کلیسا میومدن برای اولین بار در زندگیشون دیدن که عیسی گفته باید اولویت اول زندگیشون عیسی باشه. شاهی خدا باید در زندگی‌های ما اول باشه. اونها گفتن این چیزی که عیسی گفته و ما به این توجه نکرده بودیم. بعد در پاسخ به سؤال دوم خیلی از اونا گفتند بر اساس اینکه چطور از خودم مایه میذارم رو راست بگم. مهمترین چیز در زندگی من خودم بودم، همسر و بچه هام بازنشستگی و رفاه و چیزای از این قبیل بودن. وقتی اونا به سوالای من جواب دادن، اونها رو به باب سوم یوحنا ارجاع دادم و گفتم عیسی گفته وقتی از نو متولد بشید شما این رو خواهید دید که من پادشاه شما میشم خدا پادشاه شما میشه وقتی از نو متولد بشید وارد چنین رابطه‌ای با خدا خواهید شد که در اون رابطه خدا شاه شما میشه این به این معنا نیست که او کاملا پادشاه شما میشه اما حداقل شما وارد رابطه‌ای با او میشید که او شاه شما بشه من به این مشایخ گفتم بسیاری از شما گفته اید که این حقیقت رو تا حالا ندیدید و در واقع هرگز تاکنون وارد ملکوت خدا و چنین رابطه‌ای با اون نشده اید در حالی که وارد شدن به ملکوت خدا و دیدن ملکوت خدا اولین نشانه ی تولد تازه هست. آیا در این صورت این حق رو دارید که بگید تولد تازه دارید در حالی که اقرار می‌کنید اون نشانه‌های تولد تازه رو در زندگیتون تجربه نکرده اید کسی که تولد تازه داره این حقیقت رو می‌بینه خدا شاه منه و من رعیت او هستم. تولد تازه یعنی شما وارد رابطه ای با خدا شده اید که در اون رابطه خدا پادشاه شما هست. این چیزیه که عیسی به نیقودیموس میگه. او سؤالی پرسید و سؤالش رو دو بار تکرار کرد. سؤال او این بود. چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نوع متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟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 جایش در آسمان است وقتی که ایسا این حرفها رو میزنه مطمئنم که مستقیما به چشمان نیقودیموس نگاه میکنه نیقودیموس پرسیده بود چطور؟ بنابراین عیسی به سؤال او با یک کلمه پاسخ داد و اون کلمه باور بود برای خلاصه کردن و تفسیر جوابش عیسی پرسید نیقودیموس آیا به خاطر داری در اعداد باب 21 خداوند به موسی فرمود یک مار برونزی بساز و بر تیری بیاوی اگر هر مار گزیده‌ای به آن نگاه کند زنده می‌ماند پس موسی یک مار برنزی ساخت و آن را بر سر تیری آویخت و همین که مار گزیده‌ای به آن نگاه می‌کرد شفا می‌یافت البته نیقودیموس به عنوان عالم یهودی این را به خوبی میدونست وقتی اون کسایی که شکایت می‌کردند مارهای سمی اونها رو می‌نجزیدند چون خداوند از شکایت کردن نفرت داره و بعد از اینکه مارها اونها را گزیدن خدا پیام رحمتش رو فرستاد که در واقع همون مار برونزی بود بسیاری از این افراد نزد خودشون می میگفتن چطور ممکنه به لحاظ پزشکی کسی که مار گزیده با نگاه کردن به یک مار برنزی شفا پیدا کنه و همونها از سم مار می‌مردند اما بعضی از اونا می می‌گفتند شاید به نظر منطقی نیاد اما این تنها امیدیه که داریم پس از کسی میخواستند که اونها رو تا محل مار برونزی حمل کنه که در وسط کمپ نصب شده بود و اونها با نگاه کردن به مار برنزی شفا پیدا می کردن این یکی از بزرگترین معجزات در عهد قدیم هست عیسی گفت نی قدیم یادت میاد به همون ترتیب که مردم به مار برونزی نگاه کردند و شفا یافتند من به این دنیا آمدم تا مسلوب بشم و همانند اون مار برنزی افراشته بشم و چون من تنها پسر خدا هستم به عنوان تنها پسر خدا که بر صلیب می میره من تنها ناجی و تنها راه حل خدا هستم پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد اساساً این جواب عیسی به سوال نیقدیموس درباره تولد تازه بود که میپرسید چطور وقتی نیقودیموس پرسید چطور جواب عیسی یک کلمه بود و اون کلمه باور بود باور کردن یعنی چی در هر باب از کتاب انجیل یوحنا یوحنا به ما میگه و نشون میده که باور کردن یعنی چی به همون ترتیبی که مردم با یک عمل ایمانی به مار برنزی نگاه کردند و از مارگزیدگی شفا یافتند. شما به ایسا بر صلیب نگاه کنید و به خدا میگید خدایا من باور می کنم که او تنها پسر تو هست. باور می کنم که او یگان منجی تو هست. باور می کنم که او تنها راه حل هست من برای نجاتم به یگان پسر تو اعتماد می کنم. ایسا گفت این کار را بکنید از نو متولد خواهید شد. سهم شما اینه و اون بسیار ساده است. سهم شما در تولد تازه باور هست. سهم خدا در تولد تازه چیزی هست که من و شما هرگز درک نخواهیم کرد آیا شما برای تولد جسمانی لازمه که تمام جزئیات علم مامایی رو بدونید شما لازم نیست که تمام جزئیات تولد جسمانی رو بدونید تا بتونید به این دنیا بیاید شما به دنیا اومدید تولد چیزیه که برای شما اتفاق افتاده عیسی گفت شما باید به لحاظ روحانی متولد بشید عیسی نگفت شما باید خودتون رو متولد کنید او گفت متولد بشید شما وضعیت خاصی رو میبینید در اون شرایط به سهم خودتون عمل کنید سهم شما باور کردنه بعد از اون خدا سهم خودش رو انجام خواهد داد خدا تجربه تولد تازه رو به شما خواهد داد عیسی در باب سه کیه؟ عیسی تنها پسر خداست تنها ناجی خداست و تنها راه حل خداست خدا ناجی دیگری نداره خدا راه حل دیگهی به جز عیسی نداره این هویت عیسی در باب سه انجیل یوحنا هست. ایمان در باب سه چی هست؟ ایمان در باب سه اینه: نگاه کن و زنده بمان. سرودی بر اساس این داستان ساخته شده که میگه بنگر و زنده شو. خیلی ها با شنیدن این سرود تبدیل شدن به همین سادگی، فقط بنگر و زنده شو. این مفهوم ایمان در باب سه یوحنا هست. حیات در یوحنا باب سه چی هست؟ حیات از نومتولد متولد شدن هست. حیات دیدن اینه که خدا میخواد پادشاه شما بشه، حیات وارد شدن در رابطه ای با خدا هست که به وسیله اون خدا شاه شما میشه، حیات زمانیه که شما ملکوت خدا رو میبینید و وارد ملکوت خدا میشید. حیات بر اساس یوحنا بابسه زمانیه که شما تولد تازه مییابید امروز تولد تازه رو در زندگیتون تجربه کنید. همین الان در هر جایی که هستید مانند نیقودیموس با عیسی حرف بزنید و جواب او رو بشنوید که میگه به من ایمان بیار تا حیات ابدی بیابی. عزیزان دعای ما اینه که این درس ها شما رو به ایمان بر عیسی مسیح هدایت کنه تا بتونید به اون اعتماد کنید و حیات ابدی رو تجربه کنید. اگه تا امروز به عیسی مسیح به عنوان خداوند و ناجی خودتون ایمان نیاوردید امروز این کار رو بکنید. به نیازتون بر منجی اعتراف کنید و از امروز اورو پیروی کنید. باشد که محبت و فیض خداوندمون ایسا بر شما بیاد و شما را در هر کار نیکویی قوت ببخشه. ترتیبی بدید که در جلسه بعدی در ادامه مطالعه انجیل یوحنا با ما همراه باشید. تا برنامه بعدی فیض و برکت خداوندمون عیسی رو بر شما و خانواده شما میطلبیم.